بوده. و من هم واگر قدارت میشه بسن بجیر بشینم اونجا کار رو میشه خواهش میکنم خیلی ممنونم، خیلی لطشدی از کنم تو چه خب شروع بکنیم از افقا لابود ما نهولیم چه قرارمون بود کسیم؟ دخلی میدونم شما من از آقای دکتر چه دو تشریف نخواهندوش استدار شده دودن چه دخلی میشه این بعد من از اون ندارم چه دیدیم دفعه گذشته هم دیدی؟ که و جا باشه تا یاف دهانیم آم میتونیم تا دوازده کار را تمام بکنیم. بجنده باشه چه اقاحت بود چه صدا میکنم از دفعه آینده همون باشه سلام خانم هم خیلی مذبت میخوام از این چه از رفقه هایی شد نمیتونی بشین زودتر شروع میشه از خلافت این روزم را شروع میکرم با چند بیتی از خود مولانا این حکایت گفته شد زیر و زبر این حکایت گفته شد زیر و زبر همچه کار آشقا پا و سر سر ندارد از ازل بوده است از پیش پا ندارد با ابد بوده است خیش سر ندارد از ازل بوده است از پیش پانه دارد با ابد بوده است خیش بلکه تون آب است هر گفره از آن هم سرست و پا و هم بی هر دوان کانده آب نمیشه گفت سرش کجاست پاش گذاست و هر طرفش دریا از هر طرف بگیری دریا میشا اول دریاست بتونی وارد بشیگیه یا آخر دریاست یا بیهردوان اصلا نه سر داره و نهپا داره بل ون آب است هر از آن هم سر و پا و هم بیهردوان خوشبیدا این حکایت نیست خوشبیدا این حکایت نیست این نقل حال ما و توست این خوشبید درست بیدا خوشبیدا این حکایت نیست حال این حال ما و خوش ببین. ارز کنم زودتون چه دفعه بزشته ما صحبت کردیم راجب دیباچه های دفاتره و راجب دیباچه دفتر اول یه خودت هم و اگر با یادآوری باش باشه خیلی فهر فیل استوار بکنم که گفتیم اون دیواجه دفتر اول دو بند داره بند اول نعت مصنویه توصیف مصنویه در اینجا مولانا مصنوی را برده بسته به فتراش قرآن هر چه در قرآن در مصنویه و هر چه در مصنویه همون هر کنیز در قرآنه بنابرای اون چه در شعن قرآن میتوان گفت میتوان گفت که ناظر است به وضع مصنوی و این خیلی تمام تمام بذاشته درباره این چطور بند دوم را توصیف مصنبیه با اشاره این دفعه بعد معرفی خودش را چه معلف مصنبیه و معرفی میکنه حسام الدین را چه به او به درخواست او این کتاب نوشته شده و اشاره میکنه چه این مصنوی و این حسام دو تا میوه عمر او بودند دو تا حاصل عمر او بودند مصنوی را به عنوان ذخیره آخرتش پیشنهاد میکنه و معرفی میکنه به عنوان عبادتی چه امید قبول داره در درگاه خداوند این مصنوی عبادتی بوده چه میده برای همچنین حسام الدین را میگه که ذخیره دنیا و آخرت ببین ببینید تا چیز بیس حاصل عمرش یکی مصنوی یکی حسام الدینه حسام الدین را در اونجا در یه سنده در بند اول معرفی کرده در بند دوم بیشتر به معرفی به توصیب به،, به معرفی حسام الدین میپردازد اولا رابطه او را با خودش میده چه رابطه نسبت مقام روح مینجه و ذخیره یومی و میوگه دیل ما ذخیره دنیا و آخرت منه و به خاندان او اشاره میکنه به خواستگاه او اشاره میکنه که از عرومیه بوده و خاندانش لااقل در سه است تا سه نسل اونطوری که مولانا میگوید آدمهای شناخته شده محترم جلیل وقدری و, و همنچنین اشاره داره و که این این آدم معروف بوده به ابن اخی یعنی اخی بور به اسطلاحیم بودیم و اخی ها یک داستان خیلی مفصلی است که در بلاد روم در اون زمان اخی ها تکاره بودن تدوری بودند، چون اونش خیلی مفصلی لازم داره میشه الله در مقام دیگری با فرصت بیشتری در بارهش میشه صحبت کرد خب معلوم میشه آدم های خیلی متنفذی بودن اداره و شهر رو اصلا در دست داشتن این ها حال این آدم آدم اسلام ناشناخته همینجوری نبوده آدم و محترمی بوده و همین نقدار من تسمی کنم که کافی است که یادتون بیاد حرفای دیگری که در جلسه گذاشته زده شد حول این محور این فهرستوال عرض شدم مطالی بیرا که راجع به دیباچه دفتر من این روز میخواستم مارد متن بشم ولی فکر شدم چه جلچ در یک جلسه در دو جلسه این کار امهدی میشه. آ خیلی مذرت میخوام ما پیش ما... تشک کردش مادی جست رو فرار بودن و خیلی مذرت میکنیم ما زود شروع کردیم شما به موقعیم م بوددید مثل همیشه فدا خیلی معرحت ترمدید ل فرمودید و منبت فرمودید ارض کردن داشته مرد میتردن چه قرار بود این جلسه ما وارد متن مصنوی بشیم و شروع بکنیم به خوندن متن الا اینکه بعد من فکر کردم چه راجع به این دیباته ها باید صحبت بیشتری بشه یه مقدار صحبت بیشتری بشه راجع به دیواته ها شهبت مشروح مشبه به گول قدیمی ها در یه دو مدرس نمی گنزد اون یک بحث خیلی مفصلی باید بشه جاش ولی الان اشاره هایی عرض می چه مقصود هم اولاً چه این دیواته ها اگر که برای هر دفتری ما یه دیباته داریم و ظاهر اهم اینه صوره اون دیباته ناظر بر اون دفتر ولی نه اینجوری نیست اون دیباته ناظر هست بر کل مصنوی چه دیباته یک برای دفتر اول نوشته شده چه دیباته هایی که برای دفتر پندگانه بعدی روشته شده تمام این دفاتر ظاهر دیباته ها ظاهر اینه که ناظر از بر یه دفتر بخصوص ولی شما میخونید مفادش میبیدید چه ناظر به کل مثلمیست بنابراین از این لحاظ خیلی مهمه چه مولانا در مثلوی چه می دیده و چه میغاسته مالب اصلا به این کتاب چه میاندیشیده ببینید این از این لحاظ خیلی مهمه چه رجبه این مسئله من یه خورده بسواست دارم و میرم و میگردم روش ببینید ما مسلمی رو جرفتاری داشته مثلوی. ما مسلمی رو یه شارهی داشتیم در گذشته یه دم مسلمی پجروحانی داریم در دوره معاصر چه توجه جردم به مسلمی در دوران گذشته یه چیزی گرفتاری بود برای مثلی در دوران امروز ما یک چیز دیگر یک گرفتاری دیگر هست نمیدونم این بیان علچن من کافی خواهد بود این نقطه نظرم را واقعا به گوش فوزلا برسونه یا نه حال در گذشته ما طوری بود شرح مسلمی ما هر شرحی که دست میبریم مثل که شرح مسلمی فرصتی است ابزاری است میدانی است برای اینکه این شارحین اطلاعات خوششون را درباره ابن عربی و فسوط و فتوحات عرضه بکنند این یه بحانه بوده برای اینکه اظهار فضل بکنند در اون زمینه چه در اون زمینه چه دلیل و برهان ترخیختجی دلیل و برهان برجستجی اینا بوده در جامعه هر از خب سینه جلو میداد و جردان جلویچه من راجبه خب این که وسیله بوده ما اینجون داریم می بینیم. این حرف من نیست. گلپینالی مرحوم این حرف رو زدید و این ها برای یک دار فضل شده، بجن این عربی خودیم عربی رو دیم این چه ها چه بوده و چه گفته اصلا این در چیز در اخته ها حالا این دفعه در دوران ما آسیف اونا امتر یک دوره بود و گذشتشه دیجا حالا کسی برای مصنوی می‌توان چه پند جاتے به ابن عربی افضاحات و, و این الفاظ بعد از توضیحاتی چه داده شده و روشنگری‌های چه شده چه آمدن شانس و چالش مقالات شانس ثاق مقالات شانس و اینکه مولانا مثلی چه توری چه نظری داره راجع مقالات و چه جوری اون که فضل میکنم تا این حد الان اهل تحقیق نرندو مال اون چیزهای قدیمی ولی الان یه جرفتاری دیگری پیدا شده اون جرفتاری اینه که در دو در دو در دو رشته ما در غرد در این دو غرد اخیر مخصوصا در کار گرم اخی. یه مطالب تازهی مطرح شده یه مطالبی در رشته من را خیلی مذرت میخواهم من نمیدارم من جاهلم این را واقعا سواد این حرفان ندارم برای این من نگاه میکنم اینجوری میبینم یک تهوری هایی نظریه هایی نظریه های شای تلمانیکی چیز راجع به تفسیر متون گذشته مخصوصا متونه مقدس و بعد هم متونه که نظریه هایی در این بابه بعد هم یه رشته دیجا نظریه های روایتشناسانه هست درباره شناسی نظریات مختلفی که مطرح شده نظریه هست و حالا این توشندگان و پروهندگان فعلی معاصر ما چه همشون هم اهل تحقیق واقعا خیلی زحمت می چشم و که ادردانی می کنم من از زحماتشون از کوشش هایشون اینا در چه سطح در سطح دانشگاهی چه در سطح خارج از دانشگاه سخت می ولی کارشون چیه؟ کارشون اینه چه این نظریه های جدیدی که در این دو قسمتی چه چه نظریه های جدید نقده مطمون چه نظریه های مربوط به روایت شناسی اینا را بیاند و به اصطلاح باز اصطلاحی که اخیره مور پیاده شد پیادهش گفتن روی مثلوی یعنی باز همان طوری در اونجا مصنوی میدانی بود، فرصتی بود برای نشون چه نشان, داده، نشان بدن چه ما چقدر جاجب ابن عربی اطلاعات داریم، بلدیم، حالا مصنوی فرصتی شده، میدانی شده برای این چه نشان بدن چه از این تهوری ها چقدر آگاهی دارد بر فرض این اون تهوری ها را درست خونده باشند و درست فهمیده باشند من در مقامی نیستم بتونم دذارت بکنم چه اینا این که نقل می کنند تو یکی دوتا نیست بسید بسید خیلی گسترده درازدامنیست اینا بر فرض اینکه اینا رو درست خونده باشند در اصل خونده باشند نه در کوتشین هایی که نه هایی که ازشون میشه در عصد خونده باشند و به فرض اینچه درست فهمیده باشند چون دو مدار است گاهی ما بیدیم چه نه در عصد دسترچی ندارند و درست نفهمیدند نه بر فرض اینکه این دو اگه برای درست شده باشند تازه تبدیل میشه مثنوی به میدانی برای نشاندادن این چه با این تهوری های جدید اینا خوب آشین هاستن خوب مسئله چه؟ ببینید مسئله این تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به نمایشگاه بزرگ شما فکر بکنید نمایشگاه بزرگ ماشین چه ماشین های در در امریکا، در اروپا، در ژاپن هر جا که ساخته نشه، اینا را نمونه ها را ما بیاریم در این نمایشگاه بزرگ این نمایشگاه، این دیگه چیزی، ما خودمان چیزی داریم نمایشگاه تقدیب دادیم برای نمایش دادن امتعه خارجی، مصموعات خارجی ما مصنوی را نمایشگاه هی برای نمایش دادن این توریهای های خارجی اگر خوب فهم باشیم کار نداریم نمیخوام از قدرشون بکاهم آقا باز کچرار بکنم چون یک بار یه, یه سبوت با هم عربی شده هم نصبب به برن هم نصبب به استاد من آقای دکتر مکسیان پرشیدارم خیال کردم ما در صدد تقریب ابن عربی هستیم چچی در صدد تقریب ابن عربی نبوده و نیز و نباید باشه ابن عربی چه نوادر روزگاره یکی از بزسته ترین آدم چه اسلام توانسته به مدنیت به دنیا احرائه بده بابا میگم اون یه مطلب دیگر است این یه مطلب دیگر من میگم که ابن عربی یه داستان مولانه یه داستانه بعدم این چه ابن عربی فضایلی داره هنرهایی داره این باعث نمیشه که اگر اگر از ابن عربی سوء استفاده های شده اگر چدروی های شده در تبعیت از ابن عربی ما اینا را چشم بفوشید خب اینا رو باید گفت نه چه ما ابن عربی را مسئول اینا بدونیم ما اصلا آخه نه, نه محچمه داریم نه بهشتی داریم نه زهن نمیداریم ولی باید خودمان بکنیم گذاوت بکنیم کدا هستیم داریم چی میگوییم ببین تمام فضایل اینا بزرگان گذاشتمون جای خورد ولی ما حاصل کار گذشتگان رو که ما خودمون چه استفاده شدیم استفاده های مصبت اون را باید بهش در نظر بگیم و اون راهایی که ما واقعا به خطا منحرف شدیم به حطاش دادیم یا به حق یا ناحق صحبت این نیستی به حد بوده یا ناحق ولی جرفتان شدیم خودمون را اون رو باید بدونیم چه بله این ها افتاری بود اینا هیت اینا رو باید دورش خط بچشم برها اینه که من این بسه رجب مولانا و ادوارد براؤن شروع شده ادوارد براؤن میتونید که خوب خیلی کار شده رجب مخصوصا بین مستشگی شاید گفت که اول کسی سه راجبی ایران چون مستشقینه مخصوصا مال انجلیس همهشون این عرب متخصص عرب بودن متخصص کارهای عربی و اسلامشناس بودن عربشناس بودن و فارسی رو یدت می کشیدن اون کرسی هم چه بود در کمری در دلدن اینا کرسی عدمیات عرب بوده فارسی و من تا خوب اینا بعد یاشون روی فرض کنید به همین نیکوزو بسند نیکوزو شاگرد اتوار براه نویجه نیکوزو روی علاقه شخصی ششنده شده به فارسی ولی او استاد کرسی عربیه همینطور ما همینطور از مال فرض می کنم چه هم, هم طور بود حالا کاری نداریم بیر این آقای ادوال بران روی اتفاقیش افتاده آمده ایران و های جده به ایران علاقه شخصی نسبت به ایران و ادبیات ایران و ماذرا های ایران اون زمان دوران مشروطه بود دیگه داشته بخره به مایهری اولین تاریخ ادبیاته حسابی را ما اونشته دیگه چه تجرم شده نه در همش ترجمه شده یا قسمت ازمش ترجمه شده ولی ترجمه هم شده چه تاریخ ادبیات پیش از تاریخ ادبیات مرحوم صفا تاریخ دریات برون اختیار در چهار جلد خیلی عالی خیلی عالیه کارش او در زن وقتی میرسه به مولانا و مسنوی از نظر که او میکنه اینه که ببینید زین اینها ذهن اینها این مشغول بود با عشقانی که در چتاب های کلاسیج دیدن دیجه م... چون چتاب که در کلاسیک ما داریم اینه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه حمد خدا و بعد معلی خودش رو معرفی میکنه بعد میده که من این کتاب را چرای نرشتم به کدوم شاه اهدا شده و از کدوم دربار امیده مثلا سلهی داشته ایناست این دوری شروع شما کنه از شاهنامه گرفته از خود گلستان گرفته بستان گرفته تمام کتاب ها این دوری شروع می حتی چتاب های صناعی و اینا چتاب های خاگانی چتاب های نظامی خوب شروع میکنه کنه می چی این چیه نهت پیغمبر رو بعد رو دارد بعدها باید سوال خلیفه با ایران و اتا... خود عطار هم اینجوریه ما این یه وقت میرسیم به مولانا که اصلا یا الله پشت و وزنه اصلا هیچ نیست نه بسم اللهی نه علم <تصفح> نه میگه آه من چی از این که دام چیه یه وقت رو میخونه این گافل جدی در مولانا در گذریانش هم هستیه شما میبینید یک خوانه پرزمستان مستان نو رسیدن های بندی زن زیرها بریدن میبین مولانا شجردش گافی زیریه بدون این چه مقدمه بگردن نه مولانا سنت شکنه این سنت شکنی رو خب اینا نمیتونستن بفهمن که قضیتی کرده اینه آقای بران اینجا گفته چرا این مصنبی یه که پراز یکی بتونم من یاد داشته ولی دارم اینجا متنش رو نرشتم ولی نمیتونم سیداشت رو کنم کار من همیشه همونطوره گرفتارم بعد این حرفی چه مو زده گفته که همونطور پروچندگویه و پریشانه بعد این بالش گرفتن آمدن بعضی ها بیشتر در داخل ایران در خودمون ما و آمدم گفتن که خب بله این مخصوصا با توجه به این حرفایی که ازش در اون بحث های تازهی که در فرن پیدا شده راجه به ترها این ها آمدن گفتن که اصلا مذهبی ساگد تره هی. بعد گفتم فاقد ساختاره، فاقد انزدامه بعد یه هر هایی، یکی از مدلین ما مرحوم زرنکو در, در اون کتاب درخشانش از سر خیلی عالیش آمده زده که بعد نفهمیدن حرفای اینجا من پشش میکنم که زمینکوب منظورش این نبوده که این آه رو وهمیدن زمینکوب در اون تحلیلی که میکنه اونجا میگوید که مستوی بر اساط تدعایی سروده شده و در اونجا اشاره میکنه به دو اصطلاح که چی است؟ لوچ به کار برده جر جرار چرون هر حرف رو میچشونه جزر جزر چرون و کوهی اشاره یه اشاره داره به بلاغت منبری این دو تا حرف در نظر بعد بعضی از ماسرین ما اینجور اینجور تعبیر شده مذرد ما این, این تعبیر شده. شده چه مصنوی بر اساس تدائی سروده شده و بر اساس که کسی رفته راستے منبر منبر ورش بر داشته همین دو چه رشته سلام تاسش خورده شده و داره صحبتی یعنی این دو تلقی شده ها نمیگم باز صورت فراهم نشه نمیگم ما گفت زبن این تصور رو داشته ولی این دیگه شده با اون اسطلاحاتی چون او بکار برده مذرک ببینید تدایی یک برخورد عوامانه میشه شب با تدایی یک برخورد علمی میشه شد برخورد علمی, علمی تاون روی چی من میفهمم اینه چه تدایی یک اصطلاحی ایست که سیاسی در روانشناسیش در مقابل اصاسیاسو دزیده چه یه در روانشناسی در مقابل او ابدا کرد تداعی افکار مکانزم اندیشه بشری روی تداعی تداعی افتن چه روانشناسو افتن چه پایه داره چه روی رابطه هم همزواری روی رابطه مشابهت یا روی رابطه تضاده چه مطالب در ذهن به هم مرتبط میشه اینا و خب این بحث اینه چه تمام این چه بحث های برهانی چه بحث های علمی چه بحث های در هر رشته اصلا کارچرد محکاریزم اندیشه بشری روی این تدائیه ی که یه به هم مرتبط میکنه و اون ارتباط را در این اساس یه از سه اساس دوید اون ارتباط را و هم مرتبط میکنه میشه این برخود علمیشه این برخود آمیانه داره اون اینه که مثل کافه خونه چی نشستن چیزی و در مصاحره میکنن یه چیزی میکه تا از آتش هستیم بانجین آیو نیست با هرچه این آتش نوارد نیست باد او یکی میگوید داشت عباس کلیخان پسری تو دال آورده پسر بیعدب و بیهنری او چی میگه چه یکی گربه در خانه زال بود چی بر برجشت ایام و بدخان خب اینم برای تازه تداعیه ولی اون دال آخر این رو بیانش انداخته چه سهدیم اونتون راجع به گرده زال یکی چیزی ولی <coughs> این مصنوی آی اینجوزی هست؟ اگر اون تداعی و علم و معنای هر چتابی هر چتاب علمی، هر چتاب, علمی هر چتاب هنری، هر اندیشه بشری در هر رشته بر اساس تداعی می‌چنخه در اونجا غاشه من آبای دکتر خیلی مهمل نمی‌جم اینجا اگر واقعا ارتباط به مصنوی نداره یعنی اقتصاد به مصنوی نداره بله مصنوی هم تحت فرمان این چیز کلی قاعده کلی ذهن مولانا هم بله برای این اساس کار میکنه ولی اون معنای آمیانه در مورد مصنبیمون واقعا یه وقتی آدم نگاه میکنه بر آثاری که به نوشته های نام میین که سرگردانی بوی سرجدانی میده مثلین چ نمیدونه چی میخواد می بگه، نمیدونه اون میخواد بگه، این بگه میدون این سرجیجه داره اینه چه بندگی خورده به این ممسلب. <تصفيق> وقتون به جرفته با بحث می کنم من چیز می که ببینید در آخرین در یکی از آخرین کارهای ایجازه به این بحث چه خیلی بحثه خیلی کتاب واقعا از زنده بحثی چه شده در این باره چیز بحثی چه جایزه هم داده شد بود. اون نویسنده خب من نمیشون سنده رو ولی این به این نتیجه رسید در دنبال تشتج این چهارسد و خرده ای که در مستنی آمده اینا را و تشتج اینا را نگاه شده اینا به اینا تاره داره اینا اولش معلومه، وسطش معلومه، آخرش معلومه اعتباط داره به هم دیگر همونطوری که در فرنجی ها بفتن تمام این چیزها هست گفتن که خب های مصنوی تچ تچ طرح ترح دارن ولی خود متن مصنوی ترح نداره خب منظور چیه؟ اگر ترح نداره منظور اینه که خود مصنوی مولانا نمی چی میجه اصلا محمل گفته پراجندگویی گو چرده پریشانگویی چرده خب نمیشه واقعا خیلی مشکل گفتن چه یه که چه عجزاش گستهاش همش انسیزان داشته باشه تشتش گسته ها انسیزان داشته باشه ترد داشته باشه خود مدر ترد نداشته باشه یه قرده باشه بعدم این حرفایی چه مولانا خودش درباره باری مصنانی زده آیا وقت میگه با هم همچون برخوردی؟ در میتاودی همچون نگاهی را در مسلمین بعد آمدن گفتن شد خب خوب بولونیا ابتکار غریبی چردیم ما در ادبیات جدید هم در ادبیات مدرن هم رسیدیم به اون جایی که دیگه سمینوی چند بدون گسه ای طرح نداره خب ببینید مده شبیه به زم زم شبیه به مده محلوم آلا تمام مصنوی یه گسه است بله مصنوی گسه ها داره چارصد و خوده گسه داره ولی خود مصنوی آیا گسه است گسه ناییسیه یا گسه را مولانا خب گسه را قدیمی ها چی میگفتن گسه قدیم گسه میگفتن <تصفيق> غالبا در دو مورد قصه کار داشت غالبا یه چی درباره بچه که خب هنوز به اون مرحله نرسیدن که مطالب را ای دریغا خلق عالم این مال خوانی ای دریغا خلق عالم تولدی تفلان چیز برای خنده میخواهند شیرین گثه لازرم در کسه باید گفت معنی ها تمام تا نباشد کودکان را در شنیدن گثه یا گثه میگفتند برای این چه مطلب را تنزیل بگرند پایین بیارند به زبانی، به صورتی، در چصورتی، در لباسی عرضه بکنن چه این ذهن کودش بتونه بهیر این را مطالب باشه یا نه به اون میخواستن یک مطالبی را بکن چون بالایی ها برتونن. بالایی ها تا به شنیدن پند و اندرز و نصیحت روشن و این اون راهی که میدی گلته این راه درست نیست تا به شنیدن این بیان رو ندارن بنابراین این را در قالب قصه در میشه در که قصه هایی که نیست چهیل برای بزرگان گفته شده برای درباریان برای شاه گفته شده برای بزرگان اینا مراد عدب تمام هم در اینجا هست با خیلی احتیاط داره حرف میزنه ولی ملخص حرفش چیه ملخص حرفشش حرفش نیشه آی را این راه درست نیست منتا این قصه ها مربوط از همه به زندگی این جهانی یعنی در این کارها کار غلطه گلطه، کار ایچه اینجوری نمیشه این راه غلطی است ممنشتداری امر دنیاییه دیگه بر خود برداریت امر دنیایی دیجه کار اینجوری این اینا معمولا این را نقل میشهدن بعدا گفتن این, این حکایت بدان آوردم این قصه بدان آوردم خودش میگفت که چرا این گسته را بفته ببینید گستر گسته را هم بیان میگرد این حکایت بدان آوردن تا بدانی که فلان شیر فلان چرد با خرگوش بعد میشه این حکایت بدان آوردن رای اوف برحمن را رای با برحمن دار برحمن هم گیجه به این دوریه. طب. مولانا کاری به کار این دنیا نداره مولانا اصلا آمده به گوگرد چه زیر ظاهر این دنیا یک چیز دیگری روی ظواهری چه ما میبینیم در زیر این ظواهر یه هست یه غیبی هست یه عالم پوشیده یه عالم رازی است. راجبه اون عالم میخواد صحبت بکند برابر این قصه را میاد همین قصه هایی را چه برای کار این دنیا آمده همین قصه را میاد میگه اون نتیجه ای که برای کار دنیا از این قصه گرفته میشه به اون هم اشاره میکنه ولی بالای اون برای اون یه نتیجه دیگری میکنه، چون نتیجزیری رو شما در چیرهدلله پیدا نمیکنید در کتاب قصه دیگر پیدا ن این را بهانه میکنهمررو مولانا برای این چیست رنوریم رن جور میشه. دنبال رن ای میگرده در این مثل ساختار قصه چی بتونه شما را متصل بکنه به اون آلم غیر، ببینه آلم غیر تنها چیزی چی ددا می کند. این عرفان رو این نگاه عرفانی را با نگاه معمولی نه نگاه معمولی به ظواهر دنیا ارزش میده و اینا را می و برای این اصلا نمیخواد کاری کاری نداره برای این اصلا نمیخواد خودش را مشغول بکنه نظر الفونی اینه که در برای این یک عالم دیگری هست بنابراین یک گوائدی می هست که نادر است به این عالم اون قواعد در این عالم درست کار میکنه ولی یه عالم دیگری هم هست اون گواهد و اون معیارها در اون عالم دیگه کاربرد نداره ببین ما قرآن میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم شما قرآن را شروع میکنیم با سوره بدر الف لا مين. بسم الله الرحمن وی امیم زارسا استابلا رای دفیه خدا لنطبیل الَّذِينَ ای این نشان ای عالم دیگری از دیگری بکنیم <تصفح> من این که بر میگردم باید برای این که این بحث خیلی طولانی خواهد بود و به جایی هم نمیره که در این جلسه تقدر اشاری عرض می بر میگردم به خود مصنوی و ما برای این چه بدونیم چه مصنوی چی میخواد مولانا چی میخواد در مصنوی باید نگاه بکنیم و از خودش و از خودش در اول این دیباته هایی که بکتاب هایی بر دفاتر شش بانه و خود مصنوی ببینیم که بر خودش دویه ببینیم برای این چه این حرف ها خیلی دیگه مایه خستدی کن نشه من خیلی میکنم که در گردیم بیرین مصنوی رو شروعی مذهبی را چه روایتی چه ما داریم و این چه, چه دوری شروع شده خود مح مولانا میگوید مذهبی را به صدای انسان دین ساخته لیست اوی سنت آن را دیدی تین در اون نامه‌هایی که در مشطوبات مولانا شما می‌بینید که میگه هم پدر منه هم فرزند منه اینجا سامدین هم تزند منه، هم پدر منه یعنی نگاه اینجوری ها شو ببینید ما گذارشی که داریم گذارش از افلاکیه گذارش افلاکیه تقریباً 67-60 سال بعد از مولاناست خب اون چه چه در خانگاه ها گفته میشد، اینا رو نمی‌کرده در شهست سال،, سال بعد از مولانا اونجا ما داریم که ابن بطوته سیاه مراششی آمده در گونیه و اونجا ندون می‌کنه در صفرنامه‌اش می‌جه که ما اونجا رفتیم بعد مقبر مولانا رو می‌جه آمده زیارت راجع مولانا ما که راجع مولانا می اینه که بلی همون نقلی در افثانهی که در افواه بوده در گونگه جرفته که این مدرسی بوده داشته تدریس می شده و گوشتا گوش فوزلا نشسته بودن در محظرش در جرم, جرم بحث علمی یک کودشی میاد وارد میشه در دن, دن و حلوا فروش بوده و می و این حلوا را به هیچ از حاضر نیست بفروشه الا به مولونا مولونا از این حلوه چ میخوره دو جه وزش پر میگرده و مدرس را ختم میکنه و بعد از آن شروع میکنه به شعر گفتن شعرهایی که هیچ از نمیفهمید و بیشتر اینها را و این کتاب جمع شده سودت اسمش هست مصنوی و اینا الان یک تایفه هستند در بلاد روب اینا را میکن جلالیه مولوی هم نمیکن جلالیه جلالی دین مولانا جلالیه به اینا میگیرن میشین و میکنن. اون را میکنن ببینید این حکایت بعد 60-70 سال مولانا تقدیل به افتانه استموره شده همین روایت دیگری از همین چیز سوری ما در خانگاه ها داشتیم چون را اون البته نزدیشتر به واقعیات هم هست در خود خانگاه آمده ما اون را در افلاچی میبینیم افلاچی میگه همچین راوی سبر صاحب سیر و سیر سید اسحاب نظر مولانا سراز الدین مصنوی خان تربه اون چسی که موظف بود در تربت مولانا و مصنوی خان مولانا بود از او روایت میکنه. چرا چه سبب تعلیف چرا به مصنوی معنوی آن بود چه روزی الحق و الدین. بعد بعضی یاران اطلاع یافت که به رغبت تمام و عشق عظیم الهی نامه حکیم را منظورش حدیقه صناعی است چون حدیقه را الهی نامه میخواندند و در مصروی مولانا وقتی ارجا میده به, الهی به حدیقه به اسم الهی نامه هیزا میده الهی نامه حکیم را و منطقه تیر فرید الدین فرید الدین و مسیبت نامه او را دو کتاب از عطار در این خانگاه ها مورد نظر بود و در آویشتی خونده اینا را و یک کتاب از سنایه و اون شیوه معانی غریب ایشان را عجیب می‌نمود. شبی شبیه حضرت مولانا را خلوت یافته نهاد و گفت چه دواوین غزلیات بسیار شد در مولانا غزلیاتی ساخته بیجه خوب این غزل سرائی جبسی دلله الحمد ولمنه سخنان تمامت سخنگویان از عظمت اون کلاف رو ماند گذریات مولانا و واقعا هم گذریات مولانا بی نذیره دید واقعا مولانا شائلترین شائرانه و مقامش من فقط نمیجم چه مقامش فقط مقام شائره ولی شاعرترین شائرانه <تصفيق> اگر چنانی آقای سامددین به مولانا میگه اجب چرا نیچه؟ به طرز الهی نامه حکیم و اما به وزن مندوته چتابی باشد تا در میان عالمیان یادگاری بماند پس پیشانش اینه چه مولانا چتابی بسازد به اسلوب به طرز الهی نامه سنائی اما در وزن وزن مصیبت نامه و مندقه تیل باشه و مونس جان آشگان و دردمندان گردد برایت مرحمت و اینایت خواهد بود میگه بولانا فلحال من عین عبارات او را میخونم اون تو اون ول میکنم که حال از سر دستار مبارک خود جزوی خیلی مهمه جزوی چه شرح اسرار کلیات و جزویات بود جزوی چه شرح اسرار کلیات و جزویات بود به دست چلبی حسام داد و اونجا هجده بیت از اول مسلمی تا اونجا شد سلام نوشته بود اون هیچده بیدی که با چلمه و سلام دوام میشه این هیچده بید میگه که شرح اسرار و جزیات یعنی فهرست تمام مطالب مصنبی ها خلاصه مدنش این میشه بعد از اون حضرت بولانا بود که از عالم غیب در دلم امانی را الگا چرده بود چه این نوع کتابی منظوب گفته آید اکنون بیا پیشنهاد مولانا این متوابط بیا در اوج هوای همت خود پرواز شده پروازی بکن به سوی معراج حقایق در عین متوابط محمدی آهنگی بنما تا مناسب اون آهنگ پیش آهنگ فاطن ما در احتزاز آید و به نظم کلمات معانی شروع نماید ببینید خارج از این زبان بازی های به مد اون زمان شما وقتی اشارین تو هر این حرف ها را میخواهید بگیرید چی میشه تو هر این حرف های این حسام الدین پیشنهاد میکنه به این چیز تاوی درست میکنه در به نهر به شیوه حدیقه ولی در وزن منطقه تیر مثلا اینن پس در همین وزن حدیقه در وزن حدیقه نیست در وزن منطقه ولی شیوهش گایدتا قاید، شیوه هر چین سنهایی بود درست پیشنهاد مولانا بیا در عوض هوای حمت خود پس ببین مولانا سامدین را لازم داره برای ساختن مسلمی حمت مس... سامدین را لازم داره میگه پروازی کن به شروع معراض حقایق اینه این عبانتی ایسی در اون دفتر دوم در شروع دفتر دوم مولانا به کار برده میگه که بین دفتر اول و دفتر دوم فاطلی ایس افتاد میجه چون به معراض حقایق رفته بود همون معراض حقایق رو ما اینجا میبینیم پس یه بحثی هست یه مطلبی هست باید در اینها واقعا توجه کرد و دکیت کرد منظور چی میخواد بجه آه در این متابعت محمدی مسئله متابعتی که شانس تبریه در مقالات این همه روش تأچید داره و در اول برخورد با مولانا مسئله مطابعت را مطرح میکنه. کنه مسئله که ایچه را و مشتب جنه را جدا می کند در های دیگر در عین مطابعت محمدی آهنگی به تا مناسب اون آهنگ پیش آهنج باطن فاتنه ما در احتجاز آید مولانا چچی را لازم داره که این ب... به وزد بیاره به شیر بیاره و باش همراهی بتونه بکنید در ساختن خب در بحثی چه بعد از اون بعضی که بعد از این مولانا میگوید که مثل شد که نمیخوام بخونم تا افلاکی میگوید چه بله مولانا اینجان شروع شد شروع کرد در ساختن مثلی و شب روز حتی میجهد در حمام شب روز در راه و در مجلس در هر جا این مسلمی این یه معنی خیلی ظاهری داره چه این آدم دیگه مثل که مثلا یه حالت جرونامی زید چه این شب همونجور دیگه از خود بی خود و همین شعر صادر میکنه و می و دیگه را یه معنی معقوله احسابی داره با این فوت این جا به مولانی شده دیشه مولانا دیشه شب و روزش مصنویه شب و روز مشغول مصنوی شده در حمام در خواب در بیداری پیش مردم با هم همش مولانا همش به مصنوی هم دینیشه همین این وفت میده با اون که میده از دهت من خیلی کوشیدم به برای ساختن مصنوی وفق میده با اون معنی هایی چی میجه من است من امید قبولش رو این رو ما زخیره دویا و, و این میجه این رو من برای بازماندگان برای آیندگان ساختم چه مستوید برای آیندگان شیخی کند راه نمایی کند این, این میخواند این معنی میخواند با اون وفق میدهد با اون نظر مولانا بلو اونونو به هم شو جوفته و تیدای چطور حرفای آخر میگن طرح نداره ببین تر عبارت است میگویند من اینا رو چپلد نیستم میگه طرح یا پیرنج میگویند طرح عبارت از, از اون ستون فدراتی که این اجزا رو به هم مرتبط می‌شوت. بعد دونه دونه این مصنوی، گسه هاش اینتر را داره اولش پیداست، وسطش پیداست، آخرش پیداست، ولی اونچه در بعضی از موارد، در بسیاری از موارد، مولانا از گسه جدا میشه میره، میره کارهای خودش را باز بر میگرده با هوشاری تمام بر همون جایی که درد جرده بود دنبال میکنه مطلب را خب این پس یه آدمی با این حضور شما میبینید که در دفتر ششم وقتی تمام میشه در آخر دفتر ششم، در آخرین گثه دفتر ششم، ارضا میده به اولین گثه دفتر اول در گثه شخصادگان ارضا میکنه به گثه در دو جا نه در 10 به اون قصه زرجه رو اون اول مصنوی پس این آدمی بعد چند سال طول ششید ساختن مصنوی بعد چند سال این حضور این ارتباط می ارتباط عجیبی بین دفاتر هست ارتباط بین دفاتر هست ترخ در مورد قصه هست ترخ در خود دفتر نیجن ترخ نیست مجب خود دفتر قصه هست اولا خود دفترش قصه نیست، خود دفتر قصه هایی داره ولی خود دفتر محرانا چه بعد پس چی هست از خودش تو بخونیم ببینیم چه هست ایجه آیا وقت ما ساعت رسیده یا من باز علی؟ من فکر میکنم چی بیشتر از این خسته تو میکنم خودم چیسته میشم چی خودم چه چی... بله بله هر حرفش نزد خستکی هست بعد این شماها را دیجا دلن نمیاد شما را خسته بکنم ما همینجا ما برمیچینیم و امیدوارم هفته آینده بتونیم وارده جرچه حرف در اینجا راجب دلم میخواست راجب دیباچه دفتر دوم شروع بکنیم صحبت بکنیم مخصوصا راجب دیباچه دفتر سوم راجب دیباچه دفتر چهارم پنجم پنجم خیلی مهمه تا دیباچه دفتر شش رو میخواستم اول دیباچه ها رو مرور بکنیم ببینیم راجب چی راجب چی داریم صحبت بکنیم چه کتی و چه کتابی راجب صحبت بکنیم ببین مسلمن اون چه که هست خیلی عرضون خیلی سباچ نمیشه گرفت چتابی را چه در همون گیباچه دفتر اول چه دیر هفته دفه گذشته جلسه گذاشته کم در این قدر روش به اصلاب میکنه این قدر چتابی که از سر بیخوده و بیحوای و همجور یا مثلا منبر داشت داشته با. این،, این نمیشه چیزی هیچی طبیل این حروازیه این چیه این حروازیه معلومه چیه باید یه معنایی داشته باشه حال انشالله هفته آینده این مسائل رو بذاریم چمچم در مرور در بحث هایی که میاد همین گلچ اول اشارهی کرده کافی است. شرحش رو بذاریم به بعد و از دفعه آینده اینشان الله عجر جزر فرمایی سرو بکنیم در مهد خیلی مهد مذارب. مهد